اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الغاشیه به نام بخشنده بخشایش کر آیا داستان قاشیه روز قیامت که حوادث وحشتناکش همه را میپوشاند به تو رسیده است چهرههایی در آن روز خاشع و ذلت بارند آنها که پیوسته عمل کرده و خسته شده اند. و در آتش سوزان وارد می‌گردند نصقوا من عين از چشمهای بسیار داغ به آنان مینوشانند. ليس لهم طعام الا من ضريع غذایی از ذریع خار خشک تلخ و بدبو ندارند لا يسمن ولا یغنی من جوع غذایی که نه آنها را می میکند و نه از گرسنگی میره آمد جنتی يوم اذن در آن روز شاداب و با طراوتند. و از سعی و تلاش خود خوشنودند. جنت در بهشتی عالی جای دارند. که در آن هیچ سخن لغو و بیهوده ای نمی شنوند در آن چشمه ای جاری است در آن تخت های زیبای بلندی است و اقوابی و قدهایی نهاده و نمرق مصفوفه و بالش ها و پشتی های شده و فرشهای فرش های فاخر گسترده آیا آنان به شطور نمی نگرند که چگونه آفریده شده است؟ و, الى كيف رفعت؟ و به آسمان نگاه نمیکنند کنند که چگونه برافراشته شده و الجبال و به که چگونه در جای خود نسب گردیده و الارض سطحت و به زمین که چگونه گسترده و هموار گشته است فذکر انما انت مذکر پس ده که تو فقط تذکر دهنده ای لست علیهن بمسیطر تو سلطگر برانان نیستی که بر ایمان مجبورشان کنی الا من مگر کسی که پشت کند و کافر شود فیعذیبه الله العذاب الاکبر که خداوند او را به عذاب بزرگ مجازات می کند. این به یقین بازگشت همه آنان به سوی ماست ثم و مسلما حسابشان نیز با ماست.